عزیز و خوشوی سلاوتن لبیت خوشحالین لبشی سی و سی خوه نویی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نوالاتن هور من بن. هجاری مکریانی بردان او بیلس گیرانوی بسرحاتی جیانی خوی، لوکاتی که لولات رومیو، لفیستیوال دا کزور بین توکان و دولتان تیدا بشدارن، هجار بناوی کرد و کردستان و حواری خوی بگینه تا دنیا. هجاری مکریانی دنوسته، روژه که غفوری رئیس او ویستیوالا، که کی کی دریجی شانوپیل و توزک پشتکوری موزردی چاو خالقی سلیمانی بو به عربی که کهیچیلی نازانی بانجی کردم. و توی پیم خوش دگلم بی. دچمه دیدنی ارمنی کن. و توی باشه، بلامنی رپیت گناه بکردی بدوی من عربیت بود ترجمه نکم. روزیک کاغغرفوری رئیز که یکی شان و پیلخواری توزک پشت کاری موزرده چاوماری و خالقی سلیمانی بو به عربی که کهیچیلی نزنی بانجی کردم. وتی توی پیم خوش بی. دچمه دیدنی ارمنی من جوتم باشا بلالم ليره پيت گوناهه به كردي من عربي بو ترجمه ناكم و چيبوخم فارسي زانم توم پيناوي هر پيكو بين باشا ايرانيكان و بزانم چلكسگ دبون زوري کس ده گلبو كهي چم لاخي لا خوبشندان ده پريبو و بزانم ني پروانه بو رئيس كهن شل بو ناو كم ل برنماوه كا غفور چمبري ملي لشتيك نه به خيال خو فارسي بو به پرما پرميكچه پرما يوجد في طريق الهوار كابرة الشلقه خواهي وقت بو بتاقي وطي بيا شرمينا بس ندر جنابم که قوته بوم اول عراقی عراقه کانه شرمن من عراقم کل قوتی آغا چه فرمو ترجمه کم منجوتم غفور دو فارسی جوانه ناگن عبروش من چو با کرده بفرمو تاپیان بلم کدبوها من با اندازه عقلي خوام بيانگوارم من کوروجان بچلی کوردی و دګره زورکی ژولا دفتر بیروریاں د دامی بوین امزا کوم په انګلیسي له ناو نقشې کې زور منډالانه ده له ناو راست کې ده د موسې ل دوري شي ترکي ایران او عراق مده نوسی لو دفترانه ده دمدي په خطي فارسي امزا کریم حسامی نغده او رجال لمنځلی ایرانیکانم دی وتم برا تو هیڅ نبیته نه بونسه کوردوستاني کس نه پرسین نغدله رئیس شللی پرسی، حسامی قصد کرد، بوتی باله، اویش پرسی، بچی، بوتی بفارسی، کابره پرسیه و آخر مردی، حسابی و دبینی چندین دکتورو فرندواری لبزه برمانهینا و جلو تپلی کر بلایی یکر من دبر کردون، کس نبو قصه فارسیم لرادیو بابکاتو نبی؟ من گوتم، بچو با کردی قصد کتاب زنن قدری کرد من لبره، هسته، هسته بچو رو با کردی بله، تلفونشی کرد، اودم دمال اولاتی داروا کس جگه لیسرائیل و لبنانی نازانی منظورم رشایی کومالا نک سیاسی تنانت مصر و عراق و سوریشیا نبیستبو لورامیان دا اکدم گود کردستان دین ها ترکیستان؟ عراق؟ سرین رادواشن بغداد ها ها؟ کلف بغداد؟ هارون رشید؟ اوش لآهنگ کو بناوی خلیف بغداد و کوتب و برگویچکیان روشی ججنی خوبشندانی گشتی دیاری کرا همو کس افریقایی آسیاییو گلانیتر تر بلی باسی ملی خوایا هاتن دکتوری افریقاییت ادی کولا پلنگی که در و پیل و پیچاو باز قنه ای که دریجی لپشت ملی وقید کردو تاو بلاب عراقی کومونیستکانی له بغداد و چندین د استبرګي کورديو کلاشو کلاوي سورو شينين بو او مبستيان ابو کوردکان و دجي ایمانين دبریکن اوانش وک عربکان اګالو کوي کرده بر تني کورجيك کله لندن هاتبو دګل منجلي کوردي پوشي چوي نه خوب شندن تحيه کاريو کي ماکرش لايوابو دشه دسرسکوې سما لا مويا پوتګ دبو زير له وقت اس 3 هر ذره دهت ل پیش مصریانه و درویشتو الای مصری هکرده بو پیشنده گود ستی توحیه خيال پلا ویکم کرد هایران من کله صابلا و تولیز هند هند خوشوستی شوروکان بوم بو نسم روسیا لو شره شقر زگربم کوردکای لندن کلب زنم ناوی نوزاد بود گلم هات چوینه سفارت روس و تی چی تندوی وت من سفیر وتی زحمت بیبینن وت من من هه پشت و زیگوتی راواستن. بردیانی ناخزم است سفیر. با سفیر مود کاکا. بون ترجمه که من شاخم واو بالما فلانو فلان دمناسن شیر وا نصره ام وا. بون بپرس اگر بنبن روسیا یعنی آذربایجانو با کو زور ممنونم. سفیر لیمبو با قانونی. پیوتم هوال ایرا رومانیا سربخویا روسیا حقیقی باسیش تیو آبکا چی بسرچیاوی؟ دلیل با ملای مزموریان گتوی گریس مانده گتوی هر زنی لسر رخ روا. آوانی گتویان یعنی چی؟ گتوی یعنی نایدمو ببره تو. دیس قبل با خیال نبود بمال. من قاریکی آلمنیامو چای عراقیم پیدا لسای او زورم عراقی عراقیبو پیدا ببو. یک لوانه دکتر نزیهاد بو یکی کی رشو برش کلا زمانی قاسم دا وزارتی دست کد. بالام لبرد زیبی میردی هر دست نکود. کردی شی د زانی چونه صنعت له بخاریس جنې هندی زور جوان د ګلډوکس لې وبون ماتمم خوای وک او دی بیا وای ل شوم دی و لې پرسی وک او جنم دی بیا نازان مل شوې مت چونه نازانی سینما هنر پیشه سینما هاتو چوي منزل ایراني کنم ذکر قوت یان د ګل منوره ول رګی روسیا و د تبین و نم یرا کبرچ ایراني دیبو هات پرسی کاکا تو هجاری و تمباله و تی وره کرمن پیتر برد میه کافیک سی کسی تریشی حوالی اولیو بو و تیان امت تو دیو حوالی دکتر جعفری الرحمانی باسی توی بو کردوین تو دی امرو زور به هیزو پولیس و ارتش هموی بدست خومانا دادگاه لتکامن درناچه روز روزی تویا زور من کر به تویا کشعری کردی وره و ایران خود اشکراکه دادگرن بلام خاتر جنبه لحوت برد ادین، یکی انسری خسته بین جویه و تی، مصدقیش فرقیه دینو هر بینا حکومان گرته دست آی برا، کئی فا من آخر برام، هر دبی بیت موا بغدا جا اگر پیم بکری، لیو رابیم و تی انزور حسانه سبیدارون چوار روز دریا دو روز لبیرو تا و تا بغدا روشی حوتم دا چیک کارتی من بلیوان نور نشان دادی بیا ترسی پرسی پولیسی سنور دگی آی خانی لخم کارت مرگرد امضا کی حمد رضا یان رضا علیشته شیوا ب نامتن کی با هر درویمو دستم بوده بر نوک منم کرد ب نه خیر دیار بخاد رویت کردم روزی خواهی فیزیل رومانیا هر یکی 20 دلار کراسه کی باشی ادغیریان دنیو قطر کراین بو سر بحر لشاری که کنار دریا با پیشواز منو هاتن ده بزین سماو حلپرکی اک بو سک صاحبی خوی نه ناسی ده هولو سرنا اشی پیدگر را شاری کونستانی بو زوربه مسلمانو زوریش لبخاریستی انجوان تر سواری کشتی بوین زنم چند شو من پیچو بر بیانی اک با استانبول دا تیپارین برو لبنان بیانی اک لرستورانی کشتی دا خیلی که برچه خواردنین میکروفون قیراندی خوشکو براینی بر داخی گرانم دو بلای گوره روی داوه. ملیگ محمدی پینجم لمریکیش تبعید کراوه. شای ایرانیش کدر کرا بو گراوه تو ترانو مصدق رو خواه. لفلی مگدادی چارلی چاپلن کدچه تا شرم نس شرکی دیو ایسکیک دا ملی دا ساوی بو برکد. لبنی دا پارتاوه که اویش بو پیروزی را ملی خواه. لپر دبینی راشه بطابوت هلجی راوه. مل جی ای منیش بر له هرشد کارتا کیوتم لبا خلدری نه وانجر وانجرم کردو چوم پنجره و بدرین دده امیش چو اویشم چو بجاره مالی ورنم ام خیال پلا ویشم کروه نه کشتي لبیروت بیروت لنگریګر پیوی امني لبنان سرکوتن حدسته کی حولاتی بجا دابزه لسره زوی پولیس چاورون مانه و منده پشکنن دلی پشکی کالمستین تا قدرت دکن هر بونه کی کومونیټی لدهات دهات کتی بو گو اروشتي یادګاری کنه نشانه سوری پیوبه د هر لبر خوش یانه و دهن بولن سگل ستونی پینجم نماند دزانی ستونی پینجم یعنی چی تنانت من نسخه ترجمه کرانک بیلو المنجیدیچ کالای چاپی بیروتو و دفتری شرکت کلم وتم جانا، او المنجیدان وسرکای بیروتی و چاپی بیروتو و لبیروت مکری وا، و تی برابو لوا، ستونی پیانجام، میسرکان هاتن، تحیا کاریوکا، یک دن سماج جانا کرد آوانیان نبشکنی، با قربانی چایوی سی تحیا به دبوای بدالان یک دعاهی پرینو اجازه چونه نوشار لشهنه کمشت ازود کر وکن بس یک د درابونو افسر یک ب دیاریا نوبو لپارمو کنسخه کنم بداته وو غوتی اگر نروی دلم بدگرن دفتر درتر لسره و دیاربو هر چاوی کی خافل کرد پرم پیدا کردو د کم را کرد همبال غوتی چتا کی لری کی لبنانی منامستی متم اوسا کم ب بلادر یکسر وتی شعرم روزگار کردو کرانک بلم چو پاسپورت عراقو ور دنیا ندرا یو پاج دو روز ور منګر ته پولیس د ګل شوار پنځ را پیښ کې اندای نو ګان دینانه واډی حریر او تسلیم نقطه سوريیا کړین لبیر نه چی کراصه خلاټه رومانيا للی رئیس معاون کانی مانوا کله بیروت ته اندینې بیروت ګوتيان مال حزب بغداد تسلیمي حزب دکين بلان کل کی کلاشر دیار بو بو خو ان لو ماشین یک جال زور لسرسنور بو اجازه چون سوریا ریز بو بون. زور سرماش بو، زور درنگ نور من هاد. دو افسری سوریایی که یک یکیان لوسکالا یک بو بلا من تیپارین، و تی عراقین اتمن بله لوسکالا که بگلتاو پرسی، اگر من لبغدا بو مایا برای او چون دا بون. من گوتم براسی روش سد دینار درامت دا بو، هر دوکین زور پیکنین، کرجوانک غریده نو ببری بو کردین، وچې ان هرد ورج حق ته له سوریه بمینه و د ګل هاولکان وای بوچین ک او پاسپورت جرانوي دوروژه بو پولیس عراق بو نه یو نو سیویند منګر با نشانی د دانین اگر یکي غیر خبر بده آدرس اوانه مورګرد ک د بغداد هر هټ مشام جر نګون چمه حلب سوري اتوبوس بو خومګیند قامیشلیو لیوچومه ترپسپی یان قبرل بيب مالا دوائي چوار روش تلغرافم بو عبدالكرم شغداود کرد حالا چونه؟ نوسيبوی تنیا سلیم براوتا بمارستان دا ترسام اگر با پاسپورت بچمس نور پولیز قربم گره دا روشک لترپس بی ماموه بجی پیک داقل یکیک لکورانی مال حاجو لریکی چپک و چومه گونده کی عراقی کلسر سنور و ناوی سعده بو چومه دوکان قوخانش بو پرسیم کس های بمبات موصل؟ کابره برای کامیون بو گوتی، بچوار سطفلز داد بم. گوتم باشه، پشتی کامیون چند بار دغلو، زورج نومنالو، پیاوی عربو، چل پنجام رشکو قلمونه لیه برکرابو. لطنیشت شوفیر دانیشتم. ایوارا دران گیشتینا سره، خانه ای کس. سر ری، چه خانه گوندی کسک. پوستی پولیس لپشتی اوال لسر گردیگ بو. شوفیر گوتی، بالیره شیوب خویم. گوتم بره، تو دل برو بگین موسل شیوی با قیف خود بوده کرم و تی نخیر هر لیر دا بازم چوی نقاوخانه دوائی چام کرد شوفیرش دوائی شیو پولیس اکی گروه بان روی تکردم و تی چکاری؟ با چی؟ پیان بله که پاسپورتت؟ با چی لتلکوت سروان رویشتوی؟ ورام دا دوال نوکسان دا لجاتی بله ماکو که عراقیانه و یعنی نیا و تی مافی و که خل تو جاسوسی جولاکی پیشم که با پست شوффیر تو جنبه بروی دنام و چاقی سوارانی پشت کامیونو غالبا غال بیچخانه نشین کن بگردیان حال جرم بر دیار مرجوری که هم دفتری هم سی پولیس بو. چوار پولیس دستان کرد هم جیهوی سپولیس بود سرگروبانه 45 پولیس دست انگار بپرسار کردند سرگروبانو پولیس کان بیسوات بون یکی بان کرد که کورسیواتی که بود روایی نپاسپورت کرد عکس کم بریقی برکی لسردم ده هبو موتان ها هو او اکسیټونیا تو جحیر لیر داسر سپی بو اې دی خدای کته دګینی با سوا دګوتی اخر عکس شای پیویا کست له دنیا دا ناتواني عکس شاجع لبکا دلیل چی باج بو او جا خوم حاویشت سر تخت خوم حاویشت سر تخت نوسنی پولیس او تم به اجازه ای و من ده خوم او تم به اجازه ای و من خوم ده شوفیر پیدا بو اوتی جناب سیګروبان ام پیوا زور مسلمان با قران قط نیو ژوروجی نشی ای به به با قرر شرط به ده سالشه نش نکردوه رمضان نش نیه تابزانی بروج او ان خلیقی چنل یدان خو یان دیتم شو شوتی دبن تخته دا او تم چاقه کوي په قاشه شوتی دخوم او ته شوتی شي او تم برا خو په وات نه براو ناکه ل سر قاشه شوتی بګژن دابین چا کوي شو غریب و شو چقو هر هر نه براو جاسوسه جاسوسه جاسوس نیم زګم بوجنم نه لانه سوته کله سونګې منو وخت یې سرمایانه ورن دینه رکتند دمه سی بوتری اره په فکر نو لیم ګرن بروم لویدا لیم هات آی برتیل دادی با پیعوی دولاد او حویره زور او حال دگریه دبی است خبر با افسر بدم هرم شو بد بنا زندان وتمنا، نا ام شو نا سر ام تختبنو تلفونی حل خران الو الو مالی افسر دست نکود خر خر الو الو اداره پولیس خبر با جناب سروان بدن کاریکی ضرورم هیه دیانویز قصب کنو منتیه نگم با ترکیه که نیو عربی و کردی دستن دست دای کا اگر یو ترکمانو له خومانن بودګ نه کن خود بون توخه کی کی له عراق او تم اګر هب و یا زوده من خلکی سینم لپنا کرکو و چان لککو کی دناسی او تم مالا اوچی و چان لتسین کی او تم هن و حسن او عسكر و چان بلم نه توش مسلمان یعنی شیعه دبه رخصی برم نه منزانی توش مسلمان یعنی شیعه دبی بمان بخشی خزمت کارتین تلفون لیدا افسره کبو وطی ها چیا وانش وطیان قربان قربان زور باشمان میوان و لخو مانه زور سلامی با تایه اوش وطی سگی سگباب لخو راستم دکیواتا سلامی پیب گیه نی با چی روش نده بوا قرم تلفون دخرایه و وطیان داده چمدانی بو حل گره نو من هم جال دی نارکت با مزگین دادمه عرقکه اوج شوتن به سلامتی هرچی مسلمانه گروهبانکی گرت می کم دانی حال گرتو کوت شویم لرگو گوتی تو کت ترکمانی با بزمانی سگان یعنی عربی قصد دکی ایم توشی شرمزاری کرد یکیش ک داوای شوته کردو کرد تخت سرت راک و هر گال تد هاد تو کار بدسته کی جوری تکات لیکم خوان معلوم نالم خراب هم ماله من شوتم نه خاطر جنبه بایش گراما و کشوفیار خبری لداوم. گوتوی امن حقم صد فیلسفوا چنلیانداو چواصد فلسی دامی. دیار جاسوس و پولی مفتی پی. لجای خون سوار بود ما و با شوفیاری گفت، امای با سلامت نگینی موسال باوقت لکرد کشیم. بگرانی عزیزو خوشویزد لیر داو بمشی ویا حتی نکوتایی بشی سی و سی خون نوی کتی بی چشتی مکریانی تا بشی کیتر شو تن شاد جیان تن و بخت